محمد تو به شعر فارسی علاقه داری؟ بله من شعر فارسی را خیلی دوست دارم. پس چرا شعر فارسی نمی خانی؟ می میدانی فارسی من خوب نیست و شعر فارسی خیلی سخت است. تو پروین اعتصامی را میشناسی؟ نه او کیست؟ استاد ادبیات است یا نه پروین اعتصامی شاعر است شعرش چطور است شعرهای پروین ساده و زیباست، به زبان مردم نزدیک است به نظرت من هم شعر پروین را میفهمم بله شعر او ساده است چه خوب پس من دیوان اشعار پروین را میخرم من هم به تو کمک میکنم